به نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه ها چیزی فراتر از خیال بافی یا پژواک و انعکاس سنت های گذشته است بیش از هر چیز این افسانه ها باساب رؤیاهای کسانی که اونها رو پرداخته گفته و شنیدن رؤیاه از داشتن آسایش، زندگی سرشار از لذت، زیبایی و آرامش که همه مردمان جهان آرزومند اونها هستند. در این فرصت افسانهای رو براتون نقل می به نام افسانه پیر خارکن که از افسانه‌های های معروف ایران زمینه و در ادبیات شفاهی مناطق مختلف کشورمون از جمله کردستان، با کمی تفاوت رایج در زمانهای قدیم در گوشه از این سرزمین پهناور، پیرمرد خارکنی زندگی میکرد پیرمرد هر روز صبح با خاموشی آخرین ستاره توی آسمون به صحرا میرفت و غروب خسته با پشته‌های خاری که جمع کرده بود به شهر برمیگشت و با فروش خارها روزگارش رو سپری می کرد. روزی از روزها که پیرمرد خارکن مثل همیشه با پشته‌های خار از صحرا برمیگشت در بین راه به مرد غریبه‌ای برخورد کرد. مرد با خوشرویی به پیرمرد نزدیک شد و مؤدبانه گفت سلام بابا خارکن خسته نباشی پیرمرد نگاهی به سرتاپهای های مرد غریبه انداخت مرد بلند بالا و قوی کل بود و چكره مهربونی داشت پیرمرد با مهربونی جواب سلام مرد غریبه رو داد اما هنگ که خواست حرکت بکنه مرد غریبه راه پیرمرد رو ست کرد و به پوشته‌های خار که بر برگرده خمیده پیرمرد بسته شده بودن اشارهی کرد و گفت بابا خارکن این خارها رو میفروشی پیرمرد بلافاصله با خوشحالی گفت البته که و بعد اضافه کرد و گفت بسرم این کار هر روز منه مرد گفت حاضری خاراتو با این بخچه معامله کنی بعد بغچه رو که در دست داشت جلویه چشهای پیرمرد گرفت. پیرمرد با ترجم پرسید با این بخچه؟ مرد غریبه سری تکون داد و پیرمرد مکسی کرد و پرسید خب حالا تو این بخچه چی هست؟ مرد غریبه با حرکت تند و شتاب زده زانو خم کرد و روی زمین نشست و در حالی که نگاهش به اطراف میچرخید با احتیاط مشغول باز کردن گره بخچه شد. چشمای پیرمرد با دست های مرد بازی می کرد. توی بخچه یه ظرف سفال سبز رنگ بود. پیرمرد با دیدن ظرف سفال رو کرد به مرد غریبه و گفت آخه پسرم این ظرف سفال به چه درد من میخوره؟ ها؟ مرد جلوتر اومد و آهسته در گوش پیرمرد گفت میدونی این ظرف پدرجان خاصیت جادویی داره. با گفتن این حرف چهره ی به ناباوری نشست و با تعجه پرسید خاصیت جادویی مرد سری جنبوند و اضافه کرد بله در موقع گرستنگی فقط کافیه به این ظرف بگی ای ظرف بجوش و پر از آش و گوشت بشو اون وقت در یه چشم هم زدن چند نوع غذا برای تو آماده و مهیا میشه پیرمرد خم شد و ظرف سفالی رو از روی زمین برداشت و خوب براندازش کرد. اما چیز فقلادهی توی اون ندید. سکوت کرد و با تردید نیم نگاهی به مرد غریبه انداخت. نمیدونست که این مرد راست میگی یا نه. ولی بالاخره دل به دریا زد و گفت باشه من حاضرم با تو معامله کنم. مرد غریبه گفت مطمئن باش ضرر نمی کنی. و ظرف سفالی رو به طرف پیرمرد دراز کرد پیرمرد هم خم شد و پشتههای خار رو از گردش پایین آورد و دستای چروکیدش رو از غبار توی هوا تکوند مرد غریبه پشتهٔ خار رو برداشت و از پیرمرد خداحافظی کرد و رفت پیرمرد که هنوز ناباور بود و نامطمئن به طرف خونش برا مشتی ستاره توی آسمون پاشیده بود فضای محقر خونه پیرمرد رو نور کمرنگ گردسوزی روشن کرده بود پیرمرد خسته بر حسیر کهنه این گوشه اتاق نشسته بود خستگی توی پاهاش افتاده بود احساس گرسنگی کرد ظرف سفالی در مقابلش بود ولی هنوزم تردید داشت به آرومی به ظرف سفالی نزدیک شد و دستی برون کشید و با تردید گفت ای ظرف، وجوش و پر از آش و گوشت شو. پیرمرد اینو گفت و با تندی چشاشو محکم بست و منتظر موند چند لحظه که گذشت، آروم در حالی که هیجان توی دلش کاشه شده بود، چشاشو کرد بله، چند نوع قضا دروبرش چیده شده بود. پیرمرد با ناباوری چششو با دست مالید و دستشو برای لمس کردن غذاها دراز کرد. حالا دیگه یقین پیدا کرده بود که این ظرف سفالی خاصیت جادویی داره و مرد غریبه بهش دروغ نگفته بوده. پیرمرد با خوشحالی و با ولع تموم شروع به خوردن غذا کرد. اون شب پیرمرد خارکن بعد از مدتها غذای سیری خورد و بعد از غذا خدا رو شکر کرد و مرد غریبه رو هم کلی دعا کرد چند روزی از این ماجرا گذشت پیرمرد دیگه برای خارکنی به صحرا نمیرفت و هر وقت احساس گرسنگی کرد ظرف سفالی در یه چشم هم زدن چند نوع غذا براش آماده میکرد پیرمرد دیگه مشکلی نداشت اینکه یه شب مهمون ناخوندهای به خونهاش اومد پیرمرد مهمون رو به گرمی پذیرفت و بعد از ساعتی گپ زدن وقت شام رسید پیرمرد خارکند بلند شد و سفره غذا رو پنگ کرد و ظرف سفالی رو وسط سفره گذاشت بعد دستی بر ظرف سفالی کشید مرد مهمون با تعجب حرکات پیرمرد رو زیر نظر گرفت پیرمرد لباس کرد و گفت ای ظرف بجوش و پر از آش و گوشت شو و طولی نکشید که چند نوع غذا روی سفره حاضر آماده شد مرد مهمون مات و مبهوت به ظرف سفالی خیره مونده بود و فهمید که این ظرف سفالی یه ظرف معمولی نیست و خاصیت جادویی داره بنابراین طاقت نیاورد و از پیرمرد خارکم پرسید تو این ظرف سفالی رو از کجا آوردی پیرمرد ساده دل هم تمام ماجرا رو برای مرد مهمون تعریف کرد تمع تمام وجود مرد مهمون رو دربر گرفت با خودش فکر کرد چرا این ظرف مال اون نباشه و بعد نخشهی کشید که به هر نحوی شده ظرف سفالی رو صاحب بشه فورا به بازار رفت و ظرف سفالی دیگهی به همون شکل رنگ و اندازه خرید و در یک فرصت مناسب دور از چشم پیرمرد خارکن ظرف سفالی خودش رو با ظرف سفالی پیرمرد عوض کرد و به تندی خونه پیرمردو ترک کرد شب بعد پیرمرد تنها بود و وقتی احساس گرسنگی کرد بلند شد و سفره غذا رو پنگ کرد. ظرف سفالی رو وسط سفره گذاشت، دستی بر کشید و مثل همیشه گفت: ای ظرف بجوش، پر از آش و گوشت بشو. اما دید نه خبری از غذا نیست. پیرمرد با تعجب نگاهی به ظرف سفالی انداخت و دوباره گفت: ای ظرف بجوش پر از آش و گوشت شد اما این بارم خبری از غذا نشد که نشد پیرمرد آه بلندی کشید و فهمید که کار کار مرد مهمونیه که اون شب به خونهش اومده بود با ناراحتی سفره رو جمع کرد و با شکم گرسنه به خابر از فردا پیرمرد مرد خارکن مجبور شد دوباره به صحرا بره و خار جمع کنه و به شهر بیاره و بفروشه. چند روزی گذشت اینکه یکی از روزها که پیرمرد خسته و نالون از صحرا برمیگشت همون مرد غریبه رو دید. با خوشحالی جلو رفت و گفت سلام مرد غریبه منو بیاد داری؟ مرد غریبه با مهربونی نگاهی به پیرمرد مرد خارکن انداخت و گفت البته که بیاد دارم بابا خارکن. به بعد بلا فاصله پرسید با اون ظرف سفال چیکار کردی پیرمرد خارکن آهی با حسرت کشیده گفت آه, آه، چی بگم پسر چی بگم مرد غریبه گفت نکنه اونو گم کردی یا اونو شکستی پیرمرد بتوندی گفت نه نه نه یه نفر یه نفر به خونم اومد و وقتی فهمید اون ظرف یه ظرف معمولی نیست اونو با یه ظرف دیگه عوض کرد و مرد غریبه خندهای کوتاه کرد و گفت <تصفح> قصه نخور بابا خارکن قصه نخور و توی صورت خسته و چروکیده یه پیرمرد نگاه کرد و ادامه داد من یه اولاغ بت میدم. پیرمرد با خوشحالی پرسید این اولاغم خاصیت جادویی داره؟ مرد غریبه سریع به علامت تصدیق تکون داد و دست پیرمرد خارکن رو گرفت و به نزدیک الاقی که پشت دیوار کوتاهی پنهون شده بود بد الاق ریزنقش و لاغر با نزدیک شدن پیرمرد و مرد غریبه از جا کنده شد راست ایستاد و بعد های سمجی رو که در بالای سرش دایروار در حال چرخیدن بودن با دمش از خود دور کرد پیرمرد خارکن جلوتر رفت و دستی از روی مهربونی بر بدن نرم و خاکستری رنگ اولاخ کشید و رو کرد به مرد غریبه و پرسید پسر جان خاصیت این حیوان چیه؟ مرد غریبه مکسی کرد و جواب داد خاصیت این حیوان اینه که هر وقت احتیاج به پول داشتی فوراً به تو سکه های تلا میده پیرمرد با تعجب و خوشحالی گفت سکه های چجوری؟ مرد غریبه گفت ببین بابا پیره هر وقت پول خواستی بگو ای خری که هوش اون وقت میبینی که سکه های تلا برت میندازه شادی و شعف توی صورت پیرمرد پخش شد مرد غریبه الاغ رو به پیرمرد خارکن داد و آخرین سفارش رو به اون کرد و گفت فقط یادت باشه الاق رو گجایی نبری که بهش هوش بگیا پیرمرد خارکن سری تکون داد و از مرد غریب تشکر کرد. مرد غریبه هم از پیرمرد خارکن خداحافظی کرد و از اون جا دور شد. مدتی گذشت دوباره وضع زندگی پیرمرد روبهرا شد و دیگه مجبور نبود برای خارکلی به صحرا بره تا اینکه یه روز گرم و آفتابی تصمیم گرفت برای شستو شو به هموم بره سوار بر الاقش شد و به طرف حموم شهر بهرا افتاد پیرمرد به هموم که رسید الاقش رو به دالون تنگ و تاریک هموم بست و به مردی که در اونجا نشسته بود گفت مواظب الاق من باش تا من برگردم و تاکید كنن گفت ولی یادت باشه که به اون نگی هوش مرد همومی با تعجب نگاهی به پیرمرد مرد و اولاغش انداخت و چیزی نگفت پیرمرد وارد هموم شد چند دقیقه گذشت مرد همومی همینجور که داشت به اولاغ پیرمرد مرد نگاه میکرد با خودش فکر کرد که چرا پیرمرد مرد داشت که اون به اولاغش هش نگه از روی کنجکاوی به اولاغ نزدیک شد و آهسته گفت خری که حوش با تعجب دید که الاق سکه های زیادی بر روی زمین انداخت مرد همومی هم در حالی که چشش از شگفتی گرد شده بود و دهنش نیمه باز مونده بود با شتاب خم شد و سکه های تلا رو از روی زمین جمع کرد و توی جیب لباسش گذاشته. مرد همومی که حالا دیگه به خاصیت جادوی علاق پیرمرد پی برده بود با رنگی تموم اولاغی رو به همون رنگ آورد و به جای اولاغ پیرمرد خارکنگ گذاشت. پیرمرد ساده دل وقتی از هموم بیرون اومد یه سکه طلا به مرد همومی داد و سوار بر الاغ شد و به طرف خونش بهراه پیرمرد بعد از مدت کوتاهی متوجه شد باز هم فریب خورده و این الاق الاق خودش نیست دوباره وضع زندگی پیرمرد بد شد و چارهای نداشت که دوباره برای خارکنی به صحرا بره بعد از چند روز پیرمرد دوباره مرد غریبه رو دید و از دیدنش بسیار خوشحال شد پیرمرد بعد از سلام و احوال پرسی تمام ماجرا رو برای مرد غریبه تعریف کرد اینبار مرد غریبه دو چوب بلند به دست پیرمرد خارکند داد و گفت بابا پیره این چوبارو وردارو برو حقت رو بگیر پیرمرد با نومیلی پرسید چجوری من که توان زدن کسی رو ندارم مرد غریب پوستخندی زد و با لحن مهربونی گفت <تصفيق> نه بابا پیره لازم نیست تو کسی رو بزنی فقط به این چوبا بگو ای چوب ها بکوب بکوب بکو پیرمرد نگاهی به چوبها انداخت و سری تکم داد مرد غریبه چوبها رو به پیرمرد داد و از همدیگه خداحافظی کردند. پیرمرد که دلش از فریبهایی که خورده بود سخت پر بود یه راست به سراغ مردی که ظرف صفالی اونو عوض کرده بود رفت و از اون خواست تا ظرف صفالیشو پس بده ولی مرد اعتنایی به پیرمرد نکرد که نکرد پیرمرد که اصبانی شده بود به چوبها گفت ای چوب ها بکوب بکوب و در یه چشم هم زدن چوب ها به حرکت در اومدن بالا و پایین رفتن و به جون مرد افتادن و اونقدر اونو کتک زدند که مرد به التماس افتاد و با سر و صورت زخمی و خونین رفت و ظرف سفالی پیرمرد خارکن رو آورد و به پیرمرد داد پیرمرد ظرف سفالی رو گرفت و بعد به سراغ مرد هم هم مرد همومی باز هم کنار دالون تنگ و تاریک هموم نشسته بود پیرمرد خارکن رو کرد به اونو گفت من میخوام هموم کنم مواظب چوبای من باش و باز تأكید کنن گفت فقط فقط یادت باشه به اون نگی چوبها بکوب بکوب. مرد همومی که فکر میکرد این بار هم نفعی بهش میرسه با خوشحالی گفت ای به چشم برو برو خیال راحت هموم کن من مواظب به چوبای تو هستم برو برو و به محض اینکه پیرمرد پیر مرد خارکن وارد هموم شد رو کرد به چوبا و گفت ای چوبها بکوب بکوب که یه دفعه ها بالا و پایین رفتن و بر سر و صورت مرد همومی فرود اومدن مرد همومی که هیچ راه گریزی نداشت با صدای بلند فریاد زد آی پیر مرد به دادم برست پیرمرد مرد که منتظر شنیدن چون این فریادی بود خند کنون از همون بیرون اومد و به مرد حمومی گفت ها این سزا یه کسیه که مال دیگری رو صاحب بشه. و بعد در حالی که انگشت دستش رو به علامت تهدید توی هوا میچرخوند ادامه داد یا الان اولاغم رو پس بده یا این با اونقدر بر سر صورتت میکنن تا از پایی در بیای. مرد همومی همونطور که از شدت ضربات پیدرپی چوب ها به خودش میپیچید ناله کنان گفت باشه باشه الان الان آقا تو پس میده و لنگون لنگون رفت و آقا پیرمرد مرد خارکن رو آورد پیرمرد مرد خارکن هم راضی و خوشحال سوار بر آقا شد و به طرف خونش برا افتاد و از اون روز به بعد وضع زندگیش بهتر و بهتر شد افسانه ایرانی پیر خارکن رو براتون نقل کردم سرزمین ما ایران در زمینی فرهنگ آمیانه از بسیاری سرزمین های دیگه قنیتر و پرمایه بخش مهمی از این فرهنگ آمیانه رو افثانه های زیبا شنیدنی و سرشار از حکمت و عبرت در گرفته این افسانه‌ها ها که موضوعات اونها از فرهنگ مردمان مناطق مختلف گرفته شده به صورت شفاهی یا مکتوب در بین اقوام از نسلی به نسل دیگه منتقل شده که حفظ و ثبت اونها از جمله ضرورتهای فرنگی به شمار میره. این برامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بور بهار بحار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار داریوش گودرزی و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. احسانی دیگر بدرود